بخش دوام ترلکوفسکی قدیمی وقتی ترلکوفسکی وارد رستوران شد اسکوپ سایمون از قبل روی سندلی های همیشگیشان نزدیک رادیاتور نشسته بودند هر دو با دیدن ترلکوفسکی از آن سوی سالم با فریادهای پرغیل و قال به او خوش آمد گفتند به به برین کی اینجاست؟ بالاخره تصمیم گرفتی دوستایی خود تو تحویل بگیری؟ معلوم است تو این مدت کدوم جهنم در بودی؟ ترلکوفسکی از این رفتارشان به شدت عصبانی و دست باچه شد. با این حال به طرف میزشان رفت تا به آنها بپیوندد آن دو تازه پیش غذایشان را شروع کرده بودند. هر دو همزمان پرسیدند بالاخره دست همساییات خلاص شدی؟ ترلکوفسکی زیر لب توضیح مبهمی در علت قیبت طولانیش داد و در انتهای دیگر میز نشست اسکوب گفت برای چی اونجا نشستی؟ دیگه جای همیشگی خودتو دوست نداری؟ ترلکوفسکی همیشه عادت داشت سر میز بنشیند و پشتش به دیوار باشد آه بله البته صندلیاش را عقب کشید و سر میز رفت این نکته ی جز را کاملا از یاد برده بود. اسکو شروع به صحبت کرد. شنیدم مدتی مریض بودی. تو خیابون اتفاقی به هورن برخوردم و اون گفت الان یه هفته است که سر کار نرفتی. ترلکوفسکی همانطور که به صورت غذا خیره شده بود سرش را تکان داد و گفت بله همینطوره. صورت غذا و بنفش نوشته شده بود. و تقریبا مثل همیشه قلط های املایی فراوانی در نام غذاها دیده میشد. که این یک موضوع حاضر و آماده برای گفتگو بود. از آخرین باری که به اینجا آمده بود، تغییر چندانی در تنوعی پیش غذاها دیده نمیشد. مثل همیشه سالاد سیب زمینی با ادویه، خوراک گوشت خانگی با سوسیس سیردار و سبزیجات خام شامل تروبچه، هویج و از همین قبیل. از شدت تهو و دشار ترلکوفسکی قدیمی طبق عادت همیشه سفارش فیله ماهی با سالاد سیب زمینی میداد اما حالا میدانست که حتی نمیتواند یک گاز کوچک از آن را فرو بدهد فقط همین یک بار را به خودش اجازه داد تا تقلب کند و اندکی از راهی که مسمم به پیمودنش بود دور شود اسکوپوس و سایمون محو تماشای او بودند اما وانه بود میکردند که حواسشان جای دیگری است بی نهایت کنچکاف بودند ببینند او بالاخره چه چیزی سفارش می‌دهد. پیش خدمت دختری بلندقت با پوستی صورتی به میز آنها نزدیک شد و با شوخ طبعی گفت خیلی وقته که به ما سر نزدید موسی و ترلکوسکی نکنه دیگه غذاهایی ما رو دوست ندارید ترلکوسکی خودش را مجبور کرد لبخند بزند و متقابلا گفت میخواستم ببینم میتونم بدون غذا سر کنم یا نه اما نتونستم خیلی سخت بود پیش خدمت وظیف شناسانه خندید بعد بلافاصله ظاهر رسمی به خودش گرفت چی میتونم براتون بیارم مسیا ترلکوفسکی؟ اسکو و سایمون با تمام وجود منتظر شنیدن جواب ترلکوفسکی بودند ترلکوفسکی نامیدانه آب دهانش را قرد داد و بدون آنکه وقفی در کلامش بدهد گفت سبزیجات خام از انواع مختلف استیک با سیبزمینی آب پز و ماست جرات نمیکرد به بقیه نگاه کند اما میدانست که آنها به او میخندند. پیش خدمت پرسید استیکتون مثل همیشه نیم پس باشه؟ بله. خیلی دوست داشت استیکش را تمام پس بخورد اما جرأت نداشت سفارشش را تغییر بدهد. اسکوپ اولین نفری بود که سکوت را شکست. چه بلایی سرت اومده؟ انگار یک جورهایی تغییر کردی. سایمون زد زیر خنده. هر وقت میخواست با چیزی شوخی کند اول میخندید این بار علت خندش این بود که تا پیش از آمدن ترلکوفسکی آنها داشتن درباره تغییرات ارزی صحبت میکردند و حالا اسکوپ میگفت ترلکوفسکی تغییر کرده. برای اینکه مطمئن شود آنها نکته را دریافتهاند چندین بار تکرار کرد: تغییرات ارزی، تغییر کردی. ترلکوفسکی سعی کرد بخندد اما بود. حواسش بیشتر به تکه‌های چوب پنبه و ذرات ریزی بود که داخل گیلاسش افتاده بودند. سیگاری روشن کرد و خاکستر آن را داخل لیوان ریخت. یک لیوان دیگر برایش آورد. در حین خوردن سعی کرد چیزی برای گفتن پیدا کند. چیز خوشایندی که نشان دهد او هنوز هم دوستشان محسوب می‌شود. اما چیزی به ذهنش نمی رسید. سکوتی که بینشان در گرفته بود، داشت غیر قابل تحمل میشد. باید فکری می کرد. بعد ناگهان انگار چیزی به او الهام شده باشد پرسید. در مدت غیبت من، مشتری خوشگلی بوده که من از نعمت دیدارش محروم شده باشم. اسکوب چشمکی زد و گفت. یکی هست که واقعا چیز محشریه. انگار از یک دنیای دیگه اومده. پیش پای تو از اینجا رفت. بعد رو به سایمون کرد و ادامه داد. راستی تو از جورج خبر داری؟ سایمان پاسخ داد. هم، ما اون بالاخره یه جوری خودشو خلاص میکنه فقط شاید دیگه ایجوه اوزا اونجوری نشه که خودش میخواست میدونی که تا پایان قضای پا سایمون سایمان به گفتگو درباره این آقای جورج و ماجراهای غیرقابل درکش ادامه دادند بسیار خندیدند و هر از گاهی در حین صحبت صدایشان را پایین می انگار بخواهند چیزی را از ترلکوفسکی مخفی نگه دارند. اگر به خاطر همین رفتار که از بیاعتمادی آنها نبود، چه بسا ترلکوفسکی فکر می کرد که آنها وجودش را کاملا فراموش کردند؟ وقتی به زمان رفتن فرارسید، تا حدی احساس آسودگی خاطر کرد. قبل از اینکه که هر کس به راه خودش برود، اسکوپوس سایمون از او پرسیدند، آیا قصد دارد فردا هم به آنجا بیاید؟ ناخوشنودیشان از حضور او باعث شده بود با آنها احساس همدلی کند گفت گمان نمی کنم سرام خیلی شلوغه. آنها وانمود کردند که از قیبت او دل سرد شدند. اما وقتی دور می شدند با شوق بسیار می خندیدند و حرف می زدند ترلکوفسکی آن دو را با نگاه دنبار کرد تا اینکه سر یک پیچ از نظر پنهان شدند روی اسکله که رود سن را از خوشکی جدا می کرد به قدم زدن پرداخت. در گذشته هر وقت چند ساعت وقت آزاد پیدا می کرد، برای پرسه زدن به اینجا می آمد. اما حالا اسکله به نظر حوزننگیز می رسید و رود سن کثیف. کیوسک هایی که تا خروشی به نظرش همانقدر مشمعز کننده می آمدند که ردیف بی پایان ظروف زباله. روشن فکران اشخال جمع کن. با بیاعتناعایی در میان آشغالهایی که روی ویترین ویترینین به معرض دید گذاشته شده بودند به دنبال غذای روحی می گشتند. و وقتی آنچه را که در جستجویش بودند پیدا میکردند برق هرس وحشیانه در چشمهایشان درخشیدن میگرفت. و از ترسان که مبادا شخص دیگری برای به چنگ آوردنش در کمین نشسته باشد به سویش حجوم میبردند قدم زدن در این منطقه باعث شد به شدت دلتنگ و افسرده شود. به طرف دیگر اسگله رفت، اما آنجا هم با بازار فروش پرندگان و حیوانات اهلی روبرو شد. با انواع سر و صداها و بوهای حیوانات محبوس در قفص، ولگردهای های خیابان به لاک پشت ها سیخونک می زدند. سر به سر توتی ها می و هر کاری از دستشان برمیآمد آمد می کردند تا خوکشه هندی را وحشت زده کنند. مارها درون قفسهای شیشهای با بیقراری پیچ و تاب میخوردند و کمی آن طرفتر دسته موش سفید ششدانگ را متوجه حرکات مارپیچانها بود تلاركفسکی مدت زیادی به پیاد روی ادامه داد بعد از طی کردن طول تمام دیوارهای موزه لوور وارد باغهای تویلری شد روی یک صندلی آهنی نزدیک حزشهٔ بزرگ سنگی نشست تا از همانجا بچه هایی را که مشغول قایق بازی بودند تماشا کند بچه ها دور حضچه میدویدند، سر هم داد و فریاد می زدند و چوب دستی هایی را که از آنها برای هدایت قایق ها استفاده می کردند، در هوا تکان میدادند. قایق یکی از بچه ها بود یک کشتی مسافر بری اقیانوس در ابعاد بسیار کوچک با دو دود که و چند قایق نجات روی عرشه بچه از آنهایی نبود که خیلی ورج ووجه میکردند، به طور وحشتناکی هنگام راه رفتن می لنگید. همین باعث شد، مدتی بعد از آنکه قایق کوچکش در سمت دیگر حس چه پهلو گرفته بود به آن برسد. همین تأخیر بود که آن واقعه تحصف بار را به وجود آورد. یک قایق بادبانی که بد هدایت شده بود، از پهلو به کشتی مسافربری اقیانوس پیما خورد و بیدرنگ آن را واشگون گم کرد. بلافاصل آب سراسر کشتی را گرفت و تنها کاری که از پسر بچه بد اقبال ساخته بود، این بود که در نهایت عجز و درماندگی شاهد غرق شدن کشتیش باشد. عشق همچون نهر آب روی صورتش روان بود. ترلکوزکی انتظار داشت پسر بچه دوان دوان برای کمک به سوی والدینش بدود، اما او احتمالا تنها به آنجا آمده بود، چون همانجا روی زمین نشست و به گریه کردن ادامه داد. دیدن اشکای پسر بچه لذت بریبی به تررکوفسکی داد. انگارین این حکم نوعی انتقام را برای او داشتند. احساس میکرد گریهی پسر بچه برای اوست و با خرسندی نظارهگر اشکهایی شد که در گوشه چشم‌های پسر بچه جمع میشدند. در خیال خودش پسر بچه را تشویق کرد که حتی شدیدتر از قبل گریه کند. اما بعد دختر جوانی با ظاهری کاملا معمولی به طرف پسر بچه رفت و وقتی خم شد و چیزهایی توی گوشش زمزمه کرد، گریه پسر بچه بند آمد. سرش را رو به دختر جوان بلند کرد و لبخند زد. احساس عجز طاقت فرسایی به ترتکوفسکی دست داد. نه تنها گریه بچه متوقف شده بود، بلکه حالا داشت می‌خندید. دختر جوان همچنان به طور مرموزی توی گوش پسر بچه زمزمه میکرد. به نظر میرسید که دختر جوان عمیقا از چیزی هیجان زده است گونه ها و پشت گردن پسر بچه را نوازش داد بعد شانه های پسر بچه را گرفت و در آغوشش کشید آخر سر همگونش را بوسید بعد از او جدا شد و به طرف یک کیوسک چوبی رفت که در آن یک پیرزن اسباب بازی های بچگانه میفروخت ترلکوفسکی از روی صندلی بلند شد و به طرف پسر بچه رفت بعد ناگهان راهش را کش کرد و تنه محکمی به پسر بچه زد. پسر بچه متعجب از اینکه چه اتفاقی افتاده، سرش را بلند کرد و به ترلکوفسکی نگاه کرد. ترلکوفسکی سر بچه فریاد آرامی زد. "ای چشم روی یک وجبی،" و بدون آنکه کلمه دیگری بر زبان بیاورد، دو سیلی پیاپی به گونه های پسر بچه نواخت. بعد هم به سرعت راهش را گرفت و رفت. در حالی که پسر بچه از ظالمانه بودن تقدیرش دوباره به گری افتاده بود. باقی روز را صرف قدم زدن در خیابان‌های اطراف محل زندگی سابقش کرد. خسته که شد، روی یک صندلی در تراس کافه نشست و یک لیوان آبجو و ساندویچ خورد. بعد باز هم به قدم زدن ادامه داد. توی خیابان سر هر پیچ می‌ایستاد، به امید آنکه خاطراتی از حوادثی را که آنجا روی داده بود، به یاد آورد. اما چیزی به یادش نمی آمد. وقتی دوباره به ساختمان خیابان پیر رسید کاملا دیر وقت بود. فکر گذشتن از دروازه این مکانشون او را دچار تردید کرد. اما به واسطه پیاده روی های طولانی بسیار خسته بود و می خواست زودتر بخوابد. دکمه را که باز و بسته شدن در را کنترل می فشار داد. آن سوی در و داخل حیات تاریکی مطلق حک فرما بود. کلید چراغی که همیشه فقط آنقدر روشن میماند تا ترلکوفسکی به خودش را به سرعت به طبقه بالا برساند، یک جای روی دیوار سمت راست بود. دستش را با تردید به طرف دیوار دراز کرده بود که ناگهان حضور شخص دیگری را در فاصلهی بسیار نزدیک احساس کرد. همانجا که بود خوشگشت زد، گوشهایش را تیز کرد و منتظر ماند. کسی داشت نفس میکشید؟ صدای نفسهای خودش بود اما همچنان از حرکت دادن انگشتش واهمه داشت میترسید دستش با چیز نرم و لطیفی مثلا یک چشم برخورد کند با حواس جمعی بیشتری گوش داد بیش از این نمیشد همانچه به ایستد و کاری نکند دستش را اللا وختکی به سمت دیوار و در جهت کلید برق دراز گرد دستش به کلید خورد و نور سالن ورودی را فرا گرفت زنی سیاه سیاه‌پوش نزدیک او روی سطل زباده نشسته بود و با چشمهایی که آتش ازشان میبارید به او خیره شده بود. ترلکوفسکی فریاد خفه ای سر داد. زن هم جیغ هراسنگیزی کشید و لبهایش شروع به لرزیدن کرد. ترلکوفسکی خواست فرار کند اما پایش روی زمین لیز خورد. تعادلش را از دست داد و به طرف زن تلو تلو خورد. زن برای اینکه ترلکوفسکی به او نخورد سعی کرد جا خالی دهد. سطل زباله مثل گهواره به شدت پس و پیش شد. زن، جیغ زنان از پشت سر به زمین افتاد. ترلکوفسکی هم وقتی به زمین افتاد صدای فریادش همه جا را گرفت. سطل زباله واشگون شد و تقریبا هر دوی آنها را زیر محتویات خود دفن کرد. چراغ خاموش شد. ترلکوفسکی سعی کرد با قرد زدن روی زمین خودش را خلاص کند. شیء تیزی به صورتش کشیده شد. آخر موفق شد روی پاهایش بیفتد اما در چه جهتی باید فرار می کرد؟ کلید چراغ حالا در کدام طرف بود؟ دو دست مثل چنگال های یک حیوان درنده به دور گردنش حلقه زدند و فشار آوردند. زبانش از دهانش بیرون زده بود و می‌توان صدای خرخره گلویش را بشنود. بعد چیزی خیلی محکم به سرش خورد و از هوش رفت. از خواب که بیدار شد توی آپارتمان خودش روی تخت دراز کشیده بود لباس زنانه به تنداشت و دیگر حتی لازم نبود در آینه نگاه کند تا مطمئن شود که آرایش سنگینی هم به صورت دارد